نا از این الهی این شکار شکار جت که شکار همون که بعد الان شکار نمیزنن حالا نکنیم. که در ابتدا چون آینه دل از صفات با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 اذا تجلی الله له از این جنس به بسیار افتد و نفس از بحر شور بخیش، آن غرور بخورد و هر روندهای فرق و تمییز نتواند كرد میان عق و بافل جز منظوران نظر عنایت که محفوظند از کید نفس به مکر حق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 این آفت نتواند بود زیرا از لواظم تجلی حق تدکتک تور نفت است و زهوغ صفات باطل او که جا الحق و زهغ الباطل ال آیه این چه که اگر تجلی روحانی باشه صفات وشنی رو محب نمی بعدم موقع است مو... مو... بعد که برگرد صفات وشنی هم برگرد گرسته ولی تجلی رفتانی و گاهی ممکنه نفس از این تجلی روحانی سور استفاده بکنه و وزیدهی برای شاشتان که نفس دائما مشکول شیطنته این نفسی ممکن. در حالی که تجلی رفتانی وقتی صورت میگیری که صفات بشری مهد و گرگی شده میشه قول تدکتر این تدکتور که تون نفس همون صحبت تو تون رست و دک چند بلا ما تجل، لارب، جبله، جهر از اون دکت چنده اون که و خرم اون تا سعیقایم، به کلی مندک میشه، داغون بشه اصلا و صفات بشری بره تا عبد یاد جا الهب، مصرح قلباطل، این تا الباطلت این میگه فرقه، و اون دوام داره تجلی روحانی دوام بده تجلی روحانی دوام ده. بیگر آن با حصول تجلی روحانی تومعنین دل پدید نیاید و از شوایب شک و ریبت خلاص نیاید و ذوق معرفت تمام ندهد و تجلی حق به خلاق و ضد این باشد بیگر آن از تجلی روحانی غرور پندار فدید آید و عجب و هستی بیفزاید و درد طلب نقصان پزیدد و خوف نیاز کم شود و از تجلی حق این جمله برخیزد و هستی به نیستی مبدل شود و درد طلب بیفزاید و تشنگی زیادت شود چنانکه عزیزی میگوید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 با تجلی سفان کاریم ارسان از بعد دنبال این انواع تجربی ها رو میگه باز تجربی سفان که باز انواعش رو میگه تا آخر پس و خواهد دوستان راست بکنند بخونندی این که خیلی هم شوائرانه و زیبانه بشته این پس رو اما تا یک کمی ثواب فارسی ادیاج داره تو اوزم خیلی <تصفح> ولی خیلی خیلی قشنگ و زیبانه بشته این رو و تجلی صفات جلال تجلی صفات تجلی صفات جلال تجلی صفات جمال سایر مطالب و بعد توضیح میکنه اونجا حرف چیز رو حرف حلاج رو که گفت لیسه تی جبتی سر الله که این در مورد فنای مطلق خودش خصوص حق چیز رو نمیدید گفت چیزی نیست و اون که اگر صفات صفات به اصلاح چیز به صفت واهدی تجلی بکنه چه و بعد اگه اگر به صفت قائم به نفسی صفات خدا خداونند صفت قائم به نفسانش متجلی شد، آن اظهار کند که ابویزی گفت سبحان ما اعظم شان این از باویزی و از ثامین نرم کردن میگه اینکه میگه که این وقتیه که صفت قائم به نفسی حق تجلی کنه در وجودش ما سایر مسائل انواع و اقسام اینا رو میگه و فخص ادامه داره همینطور که من فعلا اینجا دیگه نمیتونم چیز بکنم فخص 5-6 داره و شایسته این هست که کم بارادم بخونه خود من دو سه بار خوندمش و بازم بیشتر باید خون حال این, این چیز این تجلی که اینجا در شهر حافظ آمده فخص است که حال حرف کار شده و حرف زده شده و مظ답 داره و چیز داره این همین ساده نه. نه اینا میگن که ما ما اهل حلول نیستیم حلول و اینا رو اتحاد و حلول و اینا رو خیلی تارد چیز می کنه میگه بنده همیشه بنده از فقط این مسئله قضیه است که به دریا چه بنده یعنی نیست پیش هیچ از من اونا نه اصلا کاری نداره یعنی البته این مطالب مطالب ریاضی که نیستش که یه رو بالاخره یه در میشه حالاتی رو حس کرده ریاضت کشته و چیزای دیده یعنی زیادی دیده که دیدهی که هم میگن خود چند میگه نگفتن اینا رو برای اینکه اکثر میگن که تصبف علم حال علم قال نید. یعنی نمیشه اینا رو چیزهایی از ذهنشون صادر میشه که اینا رو میگن بنده همچن رو ندیدم و مقامات رو تقیه نکردم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 تو عالمی دارن تو نکردی این نیست این معنی نداره دلیل جهل آدم بسیار چیزها هست که آدم نمیدونه یعنی همه چیز سوال آدم نمیدونه جز مختصر چیز محدود خیلی خیلی اندکی که در این عمر کوتاه اگر کوتاهی نکنه میشه تخت کرد بله باقی مطالب با همین یک دریا در آدم اصلاً نمیدونه ما هم استاد ما میفرمونه آقا چه خبر است در یک هندوستان چهارصد زبون مردم هست. حالا من اومدم فارسی رو همه کتاباشم هم که نخوندم اوش عشیرش هم نخوندم توی این همه دعبا این همه ارز کنم که مثل تابوز چتر زدن و به خود بالیدن و استاد استاد نداره که آمان کسی نشده چیزی نشده چیزی نمیتونه بشه، آدم چیچی هست؟ نمود بی بوده اصلا چهریان میگه بگیتی بقید از نمودی نبودیم برفتیم که از ما نماند نمود نه باست آدمیزاد اینه و بنابراین باید یه قدی حساب کارش دست خب دیگه حسابتون خوش رب به هر نیوه لنکرانی که فرمودیم یا یک بیت کارشی رو نه. میگه سهر آمدن به که ببینم از نعانی ارنی نگفته گفتی دو هزار لنترانی لنترانی وعنی مطلع اینا باید کار رفته بود ولی همونی که قرآنیه میگن لنترانی وعنی گفت کلاس الله هست بنده میرم به آنجلس. کوشش میکنم قبل از کلاس اگر هم نشود خبر میدیم دیگه ولی فکر میکنم باشیم